صفحه هشتاد و پنج. جاوید پس از احوال پرسی سریا خانم تنها خواهش خود در این دنیا را از او کرد. گفت خانم من به شما خیلی مدیونم. عمرم را به شما مدیونم. اما اگر کمک کنید که خواهر کوچک من را اینجا پیش من بیاورند تا عمر دارم این مهر بزرگ را فراموش نمی کنم و ما به زودی زحمت خود را از این خانه کم می‌کنیم، می‌رویم. سریا خانم گفت، متاسفانه این کار مقدور نیست، من سعی کردم، اما مقدور نیست. مقدور نیست؟ سریا خانم گفت، اخلاق و روحیات پدرم به این سادگی ها نیست، پسرجون پدرم از آنچه که اتفاق افتاده و به خصوص از فرار شماها روی دنده لج افتاده، بچه رو قایم کرده، البته داده نوکرهاش قایم کردن. چرا؟ میگه پدر تو خیلی به او بدهکار بوده، پول گرفته بوده، اما چند فقم جنس نیاورده بوده و تو باید بمونی برای او نوکری کنی تا حسابش تصفیه بشه. جاوید با شگفتی و ناباوری گوش کرد، سرش را تکان داد، سریا خانم گفت و متاسفانه برای آنکه بخصوص خود تو رو تنبیه کنه که دیگه به اصطلاح فرار نکنی شنیدم خواهرت رو فرستاده به یکی از باقهای کن یا اوین که داره و سپرده که بچه رو اونجا نگه دارن. کجا؟ ولو ما راستش هیچ کدوم دقیقا نمیدونیم کجا. من خودم از او خواهش کردم که از خر شیطون بیاد پایین خواهرت رو بیاره اینجا تا بعد من شما را بفرستم برگردید یه اما اون لج کرده و به من نمیگه بچه کجاست نوکرهای ذلیل موردش هم که مثل سگ میترسن و حرف نمیزنند جاوید به حرفهای آن زن گوش کرد و یعسش بیشتر شد نگاه حسرت آمیزی به دختر صرایا خانم هما انداخت که همسن و هم خواهر خودش افسانه بود صرایا خانم نگاه پسرک را دید و متوجه فکر او شد گفت قصه نخور بالاخره بر میگردونیمش، همش تقصیر اون لیلای خر و آتیش پاره شد. جاوید به سری خانم نگاه کرد، نفهمید مقصود او چیست. سری خانم گفت، اون ذلیل مرده یکی از دوتا سکه دو هزاری را که من نظر داشتم و برای شماها فرستاده بودم خودش برداشته بود، دزدیده بود، خب نظر بچم هما بود، وقتی سرخک گرفته بود نش کرده بودم وقتی خوب شد به مستحق بدم و من از شماها مستحقتر و سزاوارتر گیر نیاوردم. خلاصه لیلا یکی از دو هزاری ها را برداشته بود گوشه ی چارقدش گره زده بود قایم کرده بود. شبی که شماها فرار می کنید اون حواسش نیست چارقدش رو در میاره می قاطی رخت مادرش صبح که میخواد چارقد لیلا رو بشوره پول طلا رو پیدا میکنه. وقتی بالاخره با جی و دعوا از لیلا میپرسن لیلا از ترسش میگه پسر فروزاقا به اون پول داده. میگه پسر فیرروزاقا به اون داده بود که درباره فرارشون حرفی نزنه و چغلی میکنه که شماها مجبورش کرده بودین به او پول دادین که به شما کمک کنه. خلاصه اون دلیل مرده بود که زیر کتک ابو تراب و میرزا اشقر خبر میده که شماها فرار کرده بودید و میخواستید با ماشین دودی برید شاب و از شهر فرار کنید. جاوید گفت، لیلا؟ اما به هر حال این توضیح میداد که چطور نوکرها آن روز توی ایستگاه ماشین دودی ثبت شده بودند؟ آره آتیش به جون گرفته، من فکر نمی کردم. از اون موش اکبیری این کارها بر بیاد. جاوید سرش را انداخت پایین گفت، وقت من بوده. سرای خانم گفت، خب قصه نخور پسر، این حرفا چیه؟ خدا بزرگه، درست میشه. همینجا باش تا حالت جا بیاد و ناامید هم نشو، دنیا که آخر نشده، من خودم راضیش می کنم که اجازه بده برگردید یزد. دست عبریک و رو هم میذارم توی دستت، به سلامتی برمیگردین سر خونه و سامون خودتون، دنیا که آخر نشده. پسرش میخواست بپرسد با چه به خانه برگردم، با این پاهای فلج؟ اما سرای خانم میخواست برود، جاوید هم دیگر آن خانم نیکوکار را نگرفت، سرش را انداخت پایین، رویش را به دیوار برگرداند. در روزها و شبهای ماه اول زخمهای پاهایش بوی بدی گرفت و همچون چرک و ریمن ماجرا کرده از آنها مدام خون و آب زرد میرفت. درد مداوم بود. زیر لحاف پاره افتاده بود و با هیچکس حرف نمیزد. رو به دیوار میخوابید و سعی میکرد مغزش را خالی نگه دارد. بی فکر، دیوارهای تیره و کثیف گچی دیدگاه روز و شب او بود. یک روز دراز و خالی به دنبال شب دردناک و بیخابی می و به شب عبوس و بیخابی و دردناک دیگری فرو می رفت. او به دیوار گچی کسیف نگاه می کرد، احساس می کرد خودش هم دارد به صورت یک پاره گچ کسیف و تیره در می آید. هم داشت به صورت یک تکه گچ کسیف تیره در می آمد. آینده در بین نبود، زمان حالی در بین نبود، و با حوادث و احساسهای اخیر، حالا گذشته هم کم کم داشت برای او مفهوم خود را از دست می داد. آن همه آموزشها و آن همه سخنان زیبا و رنگارنگی که از بچگی به او انگار توتیوار یاد داده بودند، اکنون در فکرش مثل رسوب تیره و تلخی تهنشست می کرد و همانند پجباک فراموش شده ای دور می شد و گم می شد. به او گفته بودند که زندگی ایمان و فکر است. به او گفته بودند که زندگی نوری اهورایی و ساده است. به او گفته بودند که نیکی در طبیعت پرستی است و هستی پس از مرگ به روان آدمی زیبایی و جاودانگی میبخشد. اما حالا میدید که زندگی فکر و خلق ملک آراهای این دنیاست. زندگی خشونت های ناگهانی و بی اندازه، خوشی ها و ولخرجی های بی حساب بود. زندگی چوب چماغ آلبالو بود. زندگی خف خون بگیر و آنگوشه به بود. زندگی دروغ ها و چاپلوسی های آدم های کوچولو بود. زندگی صدق سریح های یک بیوهزن محروم و تنها بود. زندگی صدای موچموچ موچ حقه و بوی تریاک بود. با درد و چرک خون رو به دیوار خوابید و به گچ تیره نگاه کرد وقتی جسته و گریخته شنید که لیلا را به خانه ملک آرا فرستاده بودند تا جلو چشم ثریا خانم نباشد و لیلا حالا آنجا پهلوی خالش رقیه گم کلفت مخصوص بیبی گوهرتاج مادر ملک آرا بود برای جاوید بی اهمیت بود جاوید از لیلا احساس کدورتی به دل نداشت نسبت به لیلا هیچ احساسی نداشت، این دختر دوازده ساله هم مانند سایر آدمهای اینجا بود، پاره ای از همین دنیا بود، مخصش دیگر از فکر و از امید خالی بود، حتی انگار دیگر امید پیدا کردن افسانه را هم نداشت، امید برگشتن به یزد را هم نداشت، حتی امید و آرزوی دیدن پوران دختر امویش را هم نداشت، هرگز، روزی که سریا خانم دکتر منوچه خان نزهد برادر جوان شوهر مرحومش را که تازه از فرنگ آمده بود آورد که پاهای پسرک را معاینه کند، درمانی بکند، جاوید نخواست، سرش را بلند نکرد، نگاه نکرد، خودش را به خواب زد. دکتر منوچه خان نزهد به هر حال به دستور سریا خانم آمد، کهن پاره های پاهای او را، از توی گوشت و استخان کند و بیرون کشید، با قیچی و سوزن مدت زیادی با پاهای او ور رفت و دست آخر ساقهای پاها را یا آنچرا که از آنها باقی مانده بود دوازد، استخانها را تا آنجا که میشد جا انداخت و محکم توی تنظیف و پارچه پیچید. به او گفت که باید بلند شود و روز به روز کم کم پاهایش را حرکت دهد، تمرین دهد. اگر این کارها را نمیکرد، این خطر بود که پاهایش تا ابد چلاغ بماند یا قانقاریا بگیرد و بمیرد جاوید رویش را به دیوار گچی و کثیف تیره کرد با درد، جراحت، زخم، رنج، چرک، ریمن، خون، آب زرد، کوفت و کابوس رو به دیوار خوابید و بدینسان آن پاییز گذشت 21 صفحه هشتا هشت در آن شب برفی زمستانی در تهران، در گوشه اتاقک ته باغ خشکیده دختر شازده ملک آرا، زیر لحافی پار پوره، نیمه های شب جاوید خوابیدید. خواب دید. روی زمین یک دشت، شبیه دشت های کویری و تپه های خشک نزدیک شریف آباد یا اشکزر او روی خاک دراز کشیده بود. مرده بود یا داشت میمرد. چشمهای بیفروغش به گوشه از افق زل و مات شده بود. پاهایش در خاک دفن بود. شبه سفید ژنده پوشی از یک جای دشت پیدا شد. شبه جلو آمد تا به او رسید. گفت جاوید؟ جواب نداد. شبه به او گفت پاشو پسر جان. جاوید با ناله کسی که خفک گرفته باشد به شبه سفید پوش گفت من یک مردم. نه. تو هم یک مرده ای؟ نه، مرا تنها بگذار. شبه سفید پوش جلوتر آمد و گفت، من یک مرده نیستم. ما همه مردهایم ایم. شبه سفید پوش گفت، گوش کن تا به تو بگویم که من که هستم. من یک مرده نیستم، یک نام در کتاب تاریخ هم نیستم، جسم من شش سده پیش از حمله اسکندر به ایران در این سرزمین از مادر زاده شده هفتاد سال زندگی کرد و بعد در خاک رفت. اما من اینجا زنده هستم. جاوید سرش را برگرداند. سفید پوش گفت من همچون تو رنج فراوانی کشیدم. برو سرودهای مرا در آن هفت بخش یسنا و گاتها بخوان تا از ناله های دل من با خبر شوی. و تا مرا نشناسی، افسانه و اسطوره پارسی را نمیفهمی من یک مرده نیستم نه، من فقط یک ایمان از یاد رفته و پشت گوش انداخته شدم. شبه سفید جند پوش خیره او را نگاه کرد. زبان و سخنان پارسی کهنه نیز برای جاوید ناآشنا نبود. فرارسیدن من به این جهان پیشگویی شده بود. پیران خردمند در کتاب یشتها پیدایش مرا با نور اهورایی نوید داده بودند. فرشتگان اهورا به پدر و مادر من شیرازه گیاه هم گل دشتهای ایران نوشاندند. گرچه یک آدمیزاد فانی بودم اما آنچنان نماندم. گرچه مردم مرده نماندم. همان که زاییده شدنم با رأی و خرد پروردگار بود، زندگانی هم نیز با گزینش پروردگار جاودانی است و کار من در این جهان برانداختن تاریکی و ناپاکی بود. وقتی من زاییده شدم، آفریدگان این دنیا از زایش من شاد شدند، همان گونه که دیوهای اهریمن به ترس افتادند، چون میدانستند که من برای سرکوب کردن آنها آمدم. و می پیروزی با من خواهد بود، زایش و پیدایش من پاسخ نیایش میلیون رنج دیده و ستم کشیده بود، و میوه قربانی شدن شیرازه هم گل دشت های ایران بود. از ابتدای زندگانیم من خود را پرستنده پروردگار یکتای خردمند گزارش کردم، و من نخستین پیامبر پروردگار در یکتا پرستی هستم. شبه سفید جند ساکت ماند، به چشمان بی فروق پسرکی از پا افتاده نگاه کرد، آنگاه ادامه داد. در این دنیا من هم مورد احانتها و هدف تیرهای بالا قرار گرفتم، زمان به زمان یورشهای فراوان اهریمن درد و شکنجم داد، در بچگی جادوگر اجوزهی خواست کله مرا با سنگ خورد کند، در مورد دیگر، دوشخیمان و بندگان اهریمن خواستند مرا در آتش بسوزانند. باز در وقت دیگر، یک روز که در دشت بودم، فرستادگان اهریمن گل گاوی را به سوی من رماندند. اما گاو جلو معجزه آسا بالای سر من ایستاد و مرا ایمن نگه داشت. کوشش هایی که برای نابودی من شد بر پایه جادوگری، نادانی، بخت، خیانت ستیزه و آز بود، اما همه ماندند. و چه روایت های دیگری که میتوانم از فرارهای خودم از دستان جزه ها،, ها، و دشخیم های مزدور اهریما برای تو بازگو کنم. در جوانی من خانه و دیارم را رها کردم و به دشتها و به رودخانه های دشت و به تنهایی پناها بردم. در دنیای سرگردانی و قرب در افکار خودم، یک روز وقتی از رودخانه آب می آوردم تا با گرد گل هوم شیرازه بسازم، نخست نور خرد پروردگار به مغزم رسید. نوری به رویه یک مرد آسمانی جلوی چشمانم پدید آمد. این روشنترین نورهای نور شیدان شید بود و با من سخن گفت و مرا از آین پاک با خبر ساخت. این نخستین دیدار و گفتگوی من با اهورامزدا بود. در این دیدار بود که او جافدانگی مرا به من آگاهی داد. در این گفتگو بود که سخن پروردگار که همانا نام اهورامزداست مزداست به من گزاره شد. من در سالهای بعد هفت دیدار دیگر با اهورامزدا داشتم، در این دیدارها و گفتگوها پروردگار به من وجود دوگانگی، نیکی و بدی، روشنی و سیاهی، زیبایی و زشتی، پاکی و پلیدی، زندگی و مرگ، جاودانگی و فنا را آگاهی داد و از این بالاتر پروردگار لزوم دانستن و خرد این دوگانگی را برای من روشن کرد و پروردگار همچنین لزوم رأی و گزینشی را که هر انسان از این دوگانگی در پیش دارد، به من گوش زد کرد. پسرم، من فقط سخن پروردگار را به تو گزارش می کنم، همان گونه که به دیگران نیز گزارش کردم و من جز این چیزی نیستم. من با پروردگار گفتگو کردم، هر کس باید با زبان خودش راست و درست با پروردگار گفتگو کند، هرکس با دانش سخن پروردگار در گزینش آزاد است. همچنان که هرکس در روز رستاخیز جوابگوی پروردگار است. شبه سفید پوش باز مدتی خاموش شد. نفس تازه کرد. نگاهش را به چشمان پسرک دوخت که اکنون شگفتی و جان تازهی در آنها راه یافته بود. جاوید خودش دهانش خشک شده بود. دلش باز به تپش تند افتاده بود. شبه سفید پوش باز ادامه داد مردم در ابتدا پیام و سخنان مرا درباره ستایندگی و پرستش پروردگار یکتا با تلخی و خشونت رد کردند مرا تمسخر کردند دلهای آنها تیره و سنگ بود من البته رنج بردم و پس از سختیها و سرگردانی های سالهای بیشمار درمانده و خسته مندم. وسوسه روسبی ها و فرستادگان اهریمن نیز مرا آزار میداد، به نابودی تهدید میکرد، به فنا میکشید، اما این وسوسهها ها و تهدیدها بیفایده بودند. ایمان من به سخن پروردگار استوار و سرنوشت جاودانی من مخدوش نشدنی بود. من به سخن پروردگار و آیین پاک وفادار ماندم. تا اینکه فرجام خوب و پیروزی با من بود. شاهنشاهان بزرگ مرا و آین پاک را پذیرفتند. سخنان پروردگار اهورامزدا سخنان شاهنشاهان بزرگ شد. آین پاک آین ملی ایرانیان شد. دوره های سختی و تاریکی گذشت. این دوره سخت و تاریکی کنونی هم خواهد گذشت. خداپرستی در ایران است و این همواره آین ملی ایرانیان خواهد شد. بلند شد جاوید با او حرف بزن. تو چون منی از سختی ها می گذاری. همه از سختی ها خواهیم گذشت. ساکت شد. کم کم در سیاهی های دشت سرد فرو رفت. سراسیمه از خواب پرید. انگاری که یک نفر از میان آتش مرکز زمین لگدی توی کلش زده باشد، پاشد نشست. درون اتاقک تاریک بود. کربلایی هاشم چون بسمه سینه دیوار کنار منقر خوابیده بود. خورناس گلوی وافور زدهش درون اتاقک را پر می کرد. مدتی توی تاریکی نشست گوش کرد. اول هیچی نبود، چیزی یادش نمی آمد. فکر کرد انگار صدای جیغ بچه ای او را از خواب پرانده است. فکر کرد صدای جیغ افسانه را شنیده است. در حقیقت صدای گریه بچه ای شبیه صدای افسانه را که از جای دوری می آمد شنیده بود. اما بعد متوجه شد که صدای هما بچه سریا خانم است که در سهرگاه محتابی و برف پوشیده گریه می کرد. بعد خواب عجیبش را یاد آورد، شبه سفید پوش ژنده و خاکالود دشت را به یاد آورد و دردها و کابوس‌های کهنه مغزش مانند بانگ موزیک جنگ بالا گرفت. از زیر لحاف پاره بیرون خزید، چهار دست و پا آمد کنار دیوار، دستهایش را به دیوار گرفت. یا اشوزرتوش، با هر رنجی بود خودش را بلند کرد، افتاد، باز بلند شد. ایستاد، نفس تازه کرد، درد در تمام ستون فقراتش تیر می کشید، برد باری کرد، پاهایش را کشید و به سوی در اتاقک آمد، لای در پوسیده را باز کرد و کم کم خودش را خمیده و درد مانند جزامیها از لای در تنگ لغزاند، از تاریکی بیرون آمد و به جرز دیوار پشت اتاقک تکیه زد، ایستاد. سپید دم بود ماه سفید و پری در آسمان آبی روشن میدرخشید. ستاره های فروزان مانند دانههای های المز داشتند. برف باغ خانه کهنه را پاک و سفید کرده بود. درخت های خشک مانند شاخه های نور ایستاده بودند. اکنون خوابش را خوب و تمام و کمال به یاد آورد و فهمید. فرورته ای را که ماها بود فراموش کرده بود و در گذشته هر روز چند بار هنگام نماز میخواند خاند به لب آورد، فرورانه مزده یسنو، زره و یدیو، اهورد کیشو، استوارم به کیش خداپرستی که از دیو و دوی پرست جداست و آین خدای هستی بخش و آورنده زرتشت است، و به فکر افسانه بود، بیست و دو صفحه 92 از بامداد روز بعد با اینکه پاهایش تا یک وجب توی برف بود دور حیات شروع به راه رفتن کرد. چوبی از یکی از درخت های باق کند و مانند اصار روی آن لنگید و به تمرین بکار انداختن ازولات خشکیده پاهایش پرداخت. وقتی کربلای هاشم از اتاقک بیرون آمد که برای دست نماز به پاشیر آبنبار برود از دیدن پسرک در حیات داشت از تعجب شاخ در میآورد. جاوید به پیرمرد سلام کرد اما دیگر اعتناعی ننمود تمام روز گاه به گاه تا آنجا که نیرو به پاهایش بود به راه رفتن و تمرین کردن پرداخت هر وقت خسته میشد به درون اتاقک میرفت، دراز میکشید، نیرو بسیج میکرد و دوباره برمیگشت. اهل خانه هم، سرایا خانم و دایه قدیمیش فاتمه فاطمه بگم، از دیدن جاوید و از اینکه در پسرک نیروی زندگی ای دمیده شده، خوشحال بودند. پس از یک هفته او تون تند راه میرفت، رفت، گرچه مانند چلاقها ها میلنگید همچنین از همان روز نخست از هر کی میتوانست درباره خواهرش افسانه پرسجو کرد. متاسفانه واقعیتی که به او گفته بودند درست بود. افسانه را به دستور ملک آرا به یکی از باغهای او در کن یا در اوین برده بودند. به هر حال افسانه در خانه ملک آرا نبود. واقعیت دیگری نیز که برای جاوید مسلم شد این بود که لیلا که شاید می توانست خبری از افسانه داشته باشد در خانه ملک آرا بود. لیلا پهلوی خالش رو بگم کلفت بیبی گوهرتاج خانوم خانه شاگردی می کرد. هفته دوم شب یکی از اعیاد مذهبی که دکتر منوچه خان نزهد با قاهرش فروغ زمان و هوشنگ میرزا به منزل سریا خانم آمده بود، سریا خانم جاوید را صدا کرد آمد و دکتر منوچرخان خان های پاهای جاوید را که پس از سه ماه کسیف و زرد شده بودند از روی زخم ها باز کرد. پاهای او را معاینه کرد و گفت که بهتر شدند. فردای آن روز جاوید با اجازه سریا خانم و دریافت اندکی پول به گرمابه عمومی مردانه رفت. پس از, از متجاوز از چهار ماه که از یزد و خانمانش دور و کسیف مانده بود. کربلایی هاشم خودش او را تا دم در گرما آورد و راه و رسم را نشانش داد. خودش را شستشو داد، پاک کرد، بدنش را کیسه کشید، سر و تنش را چندین بار لیف و صابون زد، بعد در خزینه آب داغ آب تنی کرد، کاری که در آین او از ویژهترین ترین رسم های هفتگی بود. سدر را هم که امروز برای نخستین بار پس از روز مراسم رسایی یا سدر پوشان درآورده بود همانجا زیر شیر آب با صابون خوب شست چلاند و آمد با دقت روی آتش منقل بینه گرمابه خشک کرد دوباره پوشید جامعی که رسم بود و مقدر بود که او مانند هر زرتشتی با ایمان حتی پس از مرگ هم بتن داشته باشد پس از شستشو سدره و لباسش را دوباره پوشید، آمد جلوه دخل استاد حمامی ایستاد، یک عباسی پول حمام را داد، در آینه کنار دخل چشمش به حیکل و قیافه خودش افتاد، از آنچه دید یکی خرد و ترسید، در پانزده سالگی گرچه تازه پشت لبش سرد شده بود، موهای سرش گله به گله سفید بود، او همیشه پسر ریزهای بود، اما حالا، با صورت تکیده گردن باریک و سینه تو رفته و پوک آینه او را مینیاتور آدم عجیب و غریبی نشان می داد که انگار گرچه خالقش او را زیبا آفریده بود اما کولیها و جادوگرهای دهر او را هنگام تولد دزدیده بودند و برده بودند و روی بدن و سر و صورتش دستکاری هایی کرده بودند که انتر پیر معرکه این دیار و روزگار شود. پالتوی کهنه ای که سوراغا خانم به او بخشیده بود که توی سرما بپوشد به تنش زار میزد و روی زمین کشیده میشد. با همه اینها وقتی او آن روز از توی برف های کوچه از گرمابه به خانه آمد یک اراده در سر داشت که به راستی شامل دو کار میشد: یافتن افسانه و بازگشت به یزد بنابراین این به جان و زنده ماندن خودش برسد میبایست به زندگی و خودش احترام بگذارد و ایمان داشته باشد. یاد جهنم فکری خودش و یاد خالی بودن دردناک روح خودش در چند ماهه اخیر افتاد. چقدر پوچ و چقدر پست شده بود. باید به خودش ایمان داشته باشد. باید به زندگی ایمان داشته باشد و باید با بدیهایی که به او شده بود مبارزه کند. و این البته او را دوباره به پایه های اخلاقی آئیم خودش بازگشت میداد.. صفحه نود و پنج با این مرام و اخلاق بقیه زمستان را به پرسجو و جستجوی خواهر کوچکش پرداخت. در ظاهر او خانه شاگرد یا شاگرد باغبان خانهی سریا خانم 900 دوله دختر ملک آرا شده بود. با پاهایی که حالا بی فقط میلنگید رفت و آمد میکرد. مقداری از کارهای توی حیات، خریدهای جزئی و فرمانهای خان شاگردی را انجام میداد. فرمانهایی که گهگاه او را به حیات بیرونی ملک آرا هم میبرد. نوکرها و کلفتهای حیات بیرونی ملک آرا حالا گذشته او را مانند خیلی چیزهای دیگر پشت گوش انداخته بودند. او را با بی اهمیتیش و کمی مسخرگی قبول کرده بودند. جاوید در همه جا همیشه هر وقت اندک فرصتی گیر می آورد درباره باقهای کن و اوین ملک آرا حرف می پرسید. دو تا پسرهای بزرگتر قلومعلی احمد و محمد که هم سن و سال خودش بودند و گاهی میان آزارها و تمسخورها با او چند کلمه ای حرف میزدند در این مورد چیزی نمیدانستند بزرگترها هم جوابش را نمیدادند و ردش میکردند میگفتند فضولی موقوف جاوید لیلا را هم هرگز نمیدید تا از او خبری بگیرد لیلا هنوز در خانه ملک آرا نزد خالش زندگی می کرد. به هر حال جاوید نمی دانست لیلا نسبت به او حالا چه نظر و چه جور برخوردی خواهد داشت. هنوز چشماه اول تمام نشده بود که بچه ها و اهل محل از آنجا که هر کس در محله لقبی دنبال اسمش داشت و از آنجا که جاوید با قامت ریز و پیر نمایش همیشه سرش پایین بود و رفت آمد می کرد اسم جاوی جوجو را روی او گذاشتند. جاوی جوجو یا گاهی برای آنها که او را خوب نمی شناختند. جواد جوجو، جاوی جوجو بیا، جاوی جوجو برو، جاوی جوجو نیفتی، جاوی جوجو اینو بخوری چند تا میدی. لام خاک تو مخت جاوی جوجو، کی میری یزد، هنوز مرده شورش نمرده، جاوی جوجو بدو، جاوی جوجو آب میاد باگون بنداز توی حوز، جاوید جوجو بیا این کاسه های شل زرد رو ببرد. جاوید جوجو فضولی موقوف راه بیفت. جاوید جوجو شست پات نره تو چشاد. رفتار و زبان نوکرها و کلفتها با او بد و تو توان با ترین نوع مسخرگی بود. رفتار و زبان بچه های نوکرها و کلفتها و حتی سایر بچه های کوچه هم سایه و انعکاسی از رفتار و زبان بزرگترها بود. احمد، محمد و محمود، بچه های بزرگتر قلوملی، مرتزا، مصطفی و مجتبا، پسرهای میرزا از قرخان که همه عین تخم ترتیزک زود رشد کرده بودند و همه جا بلو بودند و پسرهای کوچه به طور کلی او را مدام دست میانداختند، به معنی واقعی کلمه انگشتش می کردند. یا با مطلق فوش ها و کوک های بیخودی آزارش میدادند. حتی بچه های, های بهتر محله پسرهای منزل آقای لباسانی یا آقای قریشی که او را توسری خورده و ساکت می. دید.